ندیدن چیست دنیای جدید است به دستانی اصاهای سفید است ندیدن چیست نوعی زندگانی است که دیدن آرزو در هر زمانی است که داری آرزو جای شنیدن خودت درکش کنی با حس دیدن مثال اینکه ببینی روی مادر پدر خواهر برادر یا که دلبر ولی دیدن زمانی دلنشین است که دلدارت بخندت اشق این است ببینی روی محبوبت چماه است و دیدن غیر روی او گناه است ولی خوب است امری را نبینی ولی مهدی زهرا را ببینی بخانی خط قرآن خدا را ببینی مشهد و کرب و بلا را ندیدن سخت اما بازی زیباست اگر چه مملو از محدودیت هاست